میرسیم به سوره منافقون در جمعه بحث این بود که به پای خطبه خطیب جمعه بشینید در اون بحث خطبه جمعه هم بحث جهاد میاد هم بحث انفاق میاد اینجا در سوره منافقین میخوانیم که در زجر هست بر منافقین منافقین در همین انفاق به هم دیگه میگفتند لا تنفقوا فی من اند رسول الله اینایی که اطراف پیامبر هستم بر اینها خرج نکنید که اینها متفرق بشن برن برای خودشون و از به خدمت شما خداوند در این سوره مسلمانان را سرزنش میکنه میگه شما خودتون چرا خرج نمیکنید و انفقو میمرزق نکنید خودتون خرج کنید تا نیازی به خرج کردن یک منافق نباشه شما بندگان مؤمن و مخلص در رای خدا خرج کنید این سوره یک سد و سوره هست در مدینه نازل شد سوره منافقون هست چونکه بحث منافقین در این سوره آمده و این سوره یک شعن نزول دارد یک جریانی هست که اون جریان اتفاق افتاد و کل این سوره نازل شد اون جریان این بود که آن حضرت صلی علیه و وسلم در سال شیشم هجری به غزوه بنی مستلق تشریف بردن این غزوه بنی مستلق هم است اسم دیگرش هست غزوه مرسیع همین غزوهی هست که منافقین بعد از اون به ام المؤمنین آیشه رضی اللہ عنہ زدند خیلی در این زمان منافقین از نظر تمرد و سرکشی به اوج نفاق رسیده بودند خیلی مغرور بودند لذا منافقین که همراه بودن در این جریان جریان بنی مستلق یا غضو مرئیسی مرئیسی میگه مرئیسی اسم چایی هست که این قوم بنی مستلق اطراف این چاہ زندگی میکردند. کردند داشتن می رفتند یک صحابی روستائی سادلو به نام جهجا جهجا ابن سعید غفاری این خادم حضرت عمر رضی الله تعالی نبود کاره عمر میکد کار پیش خدمت حضرت عمر بود اما از مهاجرین بود از مکه آمده بود این جهجر روستایی بود آداب را زیاد نمیدونست اونجا رفتن که استراحت بکنن زودتر رفت با دوستان و رفقاش اطراف چاه بهترین جا را که اینجا آب هست و اونجا خیمه انداخت اونجا چادر انداخت یک صحابی از انصار به نام سنان ابن وبره جوهنی این سنان ابن وبره اینم رفت که نزدیک چون گفت نه اینجا ما جلوتر آمادیم شما رو اینا با هم درگیر شدند درگیر شدند این جهجه یک توگوشی سیلی زد به سنان به اون انصاری زد وقتی که درگیری شد خب معمولا هر کسی قوم خودش را صدا می مهاجر گفت یا للمحاجرین انصاری گفت یا انصار. بگوما که من بیا یانساری ها هر دو جمع شدند هر دو گروهی که با هم درگیر بشن آن حضرت صلی الله علیه وسلم ناراحت شدند متوجه شدند فوراً رفتند و ان حضرت اونها رو توبیخ کردند و برخورد کردند با اونها و گفتند که چرا شما دوباره عادات جاهلیت و تعصب جاهلیت را دوباره زنده می‌کنی بالاخره اینجا یک صحابی انصاری به نام سنان ابن ابره جوهنی سیلی خورده بود صحابی دیگر به نام حضرت عباده ابن سامت رضی اللہ تعالی آمد نصیحتش کرد گفت تو از حقت بگذر اشتباهی کرده دهاتی هست روستایی هست نفهمید لذا این صحابی از حق خودش گذشت اینکه از حق خودش گذشت مسئله تمام شد قضیه تمام شد بعدا رئیس منافقان عبدالله ابن ابی خبر شد شما این را میدونید قبلا گفتم که عبدالله ابن ابی گرچه رئیس منافقان بود اما یهودی نبود از همین عرب های مدینه بود اصیل مدینه بود این چرا راه نفاق را در پیش گرفت اونطوری که هم تفاسیر می نوشتند هم اهل تاریخ این قبل از اینکه رسول الله به مدینه بیاد قرار بود که سردار تمام شهر مدینه بشه هر دو قبیله اوس و ایشون را به عنوان حاکم خودشون و به عنوان پادشاه خودشون و امیر خودشون اعلام بکنند لذا وقتی که رسول الله صلی الله علیه و تشریف آورد رخ و جهت همه به طرف رسول الله شد تمام اهداف و آرزوهای این به خاک رفت این عصبانی شد به این خاطر یکی از سرسختترین دشمنان رسول الله و دشمنان اسلام بود و از هر موقعیتی بر علیه مسلمانان استفاده بی لذا اینجا وقتی که عبدالله ابن ابی شنید جزء اون گروه بود وقتی که شنید که یک، یکی از انصاری ها سیری خورده از اهل مدینه سیری خورده اون یک مثال بسیار بدی گفت همون مثال معروف گفت که هر وقتی که سگت ساگ، را خیلی قضا بدی خیلی چاغ و فربهش بکنی آخر گستاخ میشه به خودت هم حمله میکنه و خودت را هم زخمی میکنه گفت اینها را اشاره به مهاجرین کرد گفت اینها را ما آوردیم اینجا این همه وقت نان دادیم قضا دادیم خرج کردیم بر اینها اینها الان به خود ما حمله دارم میکنند همین کلمات را گفت کلمات جاهلانه و به اون منافقینی که اطرافش گفت از این بعد شما بر هیچی که از اینها خرض نکنید حق ندارید دیگر پول بده به اینها هزینه میکنی برای اینها و گفت بعد از این که به مدینه رفتیم ما انسانهای عزیز و با شخصیت عزتمند با کرامت باید این انسانهای پست و زلیل را بیرون کنیم اشاره هم بچی بود به مهاجرین به رسول الله و یارانش این هارا وقتی که گفت یک صحابی جوان به نام زید ابن عرقم رضی الله تعالی نهو شنید و زید برخورد کرد به عبدالله ابن عبید گفت چی داری میگی تو به رسول الله و یارانش میگی گفت نه ما داریم شوخی میکنیم چطور زود باور کردی خلاص زید ابن عرقم این حرف را به آن حضرت صلی الله علیه رساند به وسیله امویش امویش گفت یا رسول الله عبدالله ابن ابی چنین کلمات گستاخانه و بی ادبانه آن حضرت زید ابن ارقم را خاص گفت خودت شنیدی گفت بلی یا رسول الله من شنیدم رسول الله عبدالله ابن ابی را خاص که شما چرا چنین چیزی گفتی عبدالله ابن ابی قسم یاد کرد چنان قسم های جلاله و قسم های ای که خدا میدونه روح من خبر نداری این حرفار کی برای من درست کرده چنان قسم خود که رسول اللہ باورش شد عرض کردم پیغمبر خدا علم غیب نمیدونه باورش شد زید رضی اللہ تعالی نو خیلی خجالت کشی جوانم بود و زید میگه رسول اللہ به من چنان نگاه کرد که من میخواستم زیر زمین برم از بس که من خجر شدم شرمنده شدم تکذیب شدم دیگه اون مردک با اون حیبتش با اون عظمتش سردار آمده قسم میخوره رسول الله باور میکنه تا اینکه خدای عز و جل این سوره منافقون را نازل کرد در این سوره منافقون حرفای عبدالله ابن ابی تمام تکذیب شد حرفای حضرت زید تعیید شد بعد از اون صحابه فهمیدند که چه خبره عمر فاروق رضی اللہ تعالی جلالی شد پریشان شد گفتی یا رسول الله اجازه بده بیش از این این منافق زنده نماند من خودم میزنم آن حضرت فرمود که ای عمر بعدا بقیه دشمنان چه خواهند گفت که محمد اطرافیان خودش را یکی, یکی بعد از دیگری خواهد میکشد لذا نکن این کار را بزارم. آن حضرت صبر کرد و وقتی که مسلم شد برای همه صحابه مشخص شد که این منافق بدبخت نسبت به رسول الله و اصحاب چنین توهینی کرده بعضی بهش گفتن خیرخواهی کردن گفتن که برو توبه بکن از خدا معذرت خواهی بکن و به پیغمبر بگو که برای تو معذرت خواهی بکند تکبر کرد نرفت گفت نه تا اینکه وقتی به مدینه رفتند هنوز به مدنی نرس نرسیده در ورودی مدینه فرزند عبدالله فرزند همین عبدالله ابن عبی که اون هم اسمش عبدالله بود هم نامش بود عبدالله ابن عبدالله ابن عبی او شمشیر راز نیام کشید جلوی پدر استاد وقتی مومی واقع باشه پدر هم برایش مهم نیست جلوی پدر استاد و گفت که سوگن بزات خدا تا زمانی که اقرار نکنی که رسول الله عزیز هست، عزت دارد صاحبش عزیز و من زلیلم، تا اون زمان نمیزارم وارد شهر بشه خودم میزانمید. تا اینکه پدرش مجبور شد این کلمات را به زبان خودش بیاره. لذا کل جریان منافقون این بود این سوره در همون زمان نازل شد. از کنم که نفاق منافق از نفاق است و نافق میگویند سوراخ را بعضی میگویند که سوراخ روباه را میگویند کسانی که دیدن شاید بهتر میدونند معمولا روباه در بیابان دو تا سوراخ داره یکی فریب دهنده است چون مکاره و یک سوراخ مخفی داره وقتی که کسی تعقیبش بکنه دنبالش بکنه میره از اون سوراخ مخفی داخل می یک سوراخ ظاهری است اون شکارچی فکر میکنه این سوراخ هر کاری میکنه دیگه گیر نمیاره این فریبنده هست اینها را هم به همین خاطر منافق میگویند که بالاخره از یک سوراخ وارد میشه اما سوراخ دیگر را نشون میده که راه من اینه تا شما فریب بده اینها هم هم در ظاهر خودشون را مسلمان اما در باطن هیچ بوی از مسلمانی ندارند الله تعالی می فرماید اذا جاءك المنافقون زمانی که پیش شما منافقان می آیند قالوا نشهد انک لرسول الله می گویم ما گواهی می‌دهیم که تو رسول خدا هستی الله می فرماید والله يعلم انك لرسوله الله می دانت که همانات رسول خدا هستی اما خدا گواهی می دهد والله يشهد الله گواهی می دهد ان المنافقين همانا منافقین دروغ می چه دروغ می منافقین گفته انك لرسول الله آیه در این انك لرسول الله دروغ می نه دروغ میگن فی قولهم نشهدوا این که من شهادت میدم دروغ میگه است ته دل شهادت نمیده در قالش نشهدوا دروغ میگه یا اینکه در بقیه اقوالی که بعدن آید اتخذوا ايمانهم الله فرماید همانا آنها گرفتن سوگند خودشان را سوگند یاد می‌کنند همونطور که ابن ابی سوگند یاد کرد اتخذوا ایمان جنتا جننتن آنها گرفتن سوگند خودشان را سپری برای خودشون گرفتن فصدو عن سبیل الله به این وسیله باز داشتن از راه خدا نگذاشتن که مردم در مسیر حق قرار بگیرن با دروغ حشان انهم سا اما کانو یعملون همانا انها بسیار بد آنچه عمل کردن آنچه عمل کردن بسیار بد عمل کردن ذالک بی انہم آمنو ان نفاقشون چیه؟ این نفاق این بسبب این است که همانا آنها ایمان آوردن بظاهر ثم مکفرو سے پس کف کردن حقیقتاً کفت کردن. فَتُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ بر دلها مهر شده. فَهُمْ لا يَفْقَهُونَ اونها حقیقت ایمان را نمی فاهمن. متوجه نیستن این سمره مهر است. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ مهم هیچ وقت بر ظاهر انسان قضاوت نکند. اینها ظاهر چنان آرست داشتن، زاهر زیبا داشتند که الله هر هرگاه شما اینها را ببینید تعجب که اجسامهم اجسام أجسامی اونها یعنی شکلی اونها، دکور اونها، زاهرش اونها باعث اعجاب و شگفتی و خوشی شما میشه. یعنی می‌پسندی چقدر زیبا هستند چقدر ماشاالله ظاهرش خوبه. و این یا و اگر اونها سخن بگویند تسمع لقولهم شما قول اونها را چی میکنید؟ گوش میکنید که انهم خوش و مسنده اما همین ظاهرش هست درونش هیچی نیست گویا اونها چوب مسنده هستن مسنده چوبی را میگن که به دیوار تکیه داده ببینید بیشتر چوب تو خالی را میگوین مسنده اون چوبی که به درد بخورد اون چوبی که ارزش داشته باشد شما اون چوب را چکار میکنی؟ به سقف میذارید به دیوار تکه نمیدید اون با اون چوب سقفی درست میکنی برای اتاق ولی وقتی که توش خالی باشد و چوب سستی باشد اون را دیگه روی سقف نمیذارن به دیوار تکهش میدن پس مسنده چرا به چوب مسنده تشبیدات؟ فی کونهم اشباها خالیتون عن العلم والنظر. فقط شبهی دارد دکوری دارد ظاهر زیبایی دارد اما تهش خالی هست از علم از نظر از ایمان از صداقت از هرچی که خوبی هست تهش خالی هست یحسبون کل سیحت این جبر منافقین بزدلی منافقین هر فریادی را فکر میکنم بر, بر علیه ماست تا آیه نازل میشه گفته میشه آیه نازل شده اینا میلرزن که بر علیه ما نباشد یحسبون کل صیحه علیهم می پندارند هر فریادی را بر علیه خودشان هم العدو الله میفرماید اینا دوست نیستند اینا در واقع دشمنند فحذرهم از این حد بر حذر باش قاتلهم الله انا یفكون اینجا خداوند نفرین فرموده اونها را قاتلهم الله خدا اینها را بکوشد بمیرا اینها ها ان یوفقون ب کدام سمتینا برگردانده میشوند خب حال بیان تکبر منافقین هم بیان بزدلیشون آمد هم بیان خیانت و دورنگیشون آمد حال بیان تکبر چی صفاتی که منافقین دارند ببینید این صفات در زمان ما هم زیاده هم بزدلی هست هم تکبر هست و هم صفات دیگر الله می فرماید واذا قيل لهم تعالوا هرگاه به آنها گفته میشه تعالوا بیایید یستغفر لكم رسول الله طلب مغفرت بکند برای شما رسول خدا از خدا لوو رؤوسهم رؤسهم بر سرشون را و رأی یسدون یا آنهارا میبینی آنها را که یسدون باز میآیند و هم مستکبرون اونها تکبر میکنند، تکبر میکنند نمیآیند. الله میفرماید سوا اون علیهم برابر بر آنها ای پیامبری من تو مغفرت بخای بر آنها یا نخای خدا نمیبرسی. سواء عليهم برابر است استغفرت لهم استغفار بتلبی برای ام لم تستغفر لهم یا استغفار نتلبی لن يغفر الله لهم هرگز هرگز خدا آنها را نمی بخشد خدا نمی بخشد چرا چونکه ان الله لا يهدي القوم الفاسقين الله عز وجل هدایت نمیکند یعنی توفیق هدایت نمیده اون قوم فاسقی را فاسق یعنی چه یعنی اون کسی که از حد و حدود خدایی خارج شده از اعتدال خارج شده و الله عز و جل می فرماید همون لذین هر چیزی که انکار می خدا می فرماید نه اینها گفتند همون لذین یقولون اینها هستند که می به بهم دیگه می گویند لا تنفقوه على من عند رسول الله خرج نکنید بر اون صحابه و بر اون یاران و فقرائی که نزد رسول الله هستند حتی انفضو حتی که فرار کنند بگریزند حتی از اینجا برند دیگه برای خودشون از گروس لگی برند در حالی که بیچاره این احمق نمی دونه که تمام خزائن به دست الله خدا مگه دوستان خودش را گرسنه می‌گذارد ولله خزائن السماوات والارض فقط وفغت برای الله خزانه آسمانی و زمینی ولكن المنافقين لا يفقهون اما منافقین نمی فهمند عقل ندارند فهم ندارند چرا نمی فهمند اینه که مدار رزق و روزی با خدا است اونا فکر میکنند اگر ما پولی دادیم دادیم اگر ندادیم این از گروسنگی میمیرد همون طور که خیلی از ماها فکر میکنیم نسبت به بعضی فقرا، بعضی وقتا ما ادیا میگه اگر من نباشم از گروسنگی میمیره به تو کی داد که اگر تو نباشی از گروسنگی میمیره تو نباشی خدا یکی دیگر را میاره بسیاری در باره مدارس هم مدارس دینی همین را میگن مردم اگر خرج میکنن برای مدارس دینی اگر هزینه میکنن خدا عجرشون بده ولی این نیست که مننت بگذار اگر ما نباشیم اینها از بین میروند الله عز وجل میفرمايت انما الله تعالی ببخشید رسول اکرم صلی الله علیه و الیهم میفرمايت حدیث است اینما ترزقون و تنصرون بضعفائكم شما اگر رزق دارید اگر خدا شما را نصرت می کند یاری می کند در حمایت خدا هستی سبب زعفا چار تا ضعیف در وسط شما هست یه پدر و مادر پیری داری داری بر اون خرج میکنی، بچه های نوزادی داری اونا بر اونها خرج می به بفقراء بیتیم ها خرج می که خدا برکت داده لذا خدا به برکت اونها به شما داده هیچ وقت کسی بر فقیری مننت نگزارده که من هستم اگر من نبودم میمرده از گروس نگی؟ نه خدا اگر به تو داده هم ببرکتی همون داده لذا الله می فرماید هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفذوا إنها كثاني هستن كي خرج نكوني بر, رسول بر أطراف رسول الله أطرافيان رسول الله حتى كي متفرق بشند ولله خزائن السماوات والأرض أما فقط وفغت براي الله خزانها يا آسماني وزميني ولكن المنافقين لا يفقهون أما إن منافقين فهم ندارن درك ندارن كي مدار رزق وروزي بر نبر سرماية يقولون لئن رجعنا إلى المدينة سخن دفوم كفري شون راه الله ذكر ميفرماد يقولون انها ميگويند لئن رجعنا اگر ما برگردیم به مدينة به شهر مدينة برئیم ليخرجن الأعز منها الأذل حتما حتما خارج میکنن انسان هاي عزيز وبها شخصیت از آن مدينة الأذل انسان هاي زلیل بشخصيته ذلیل و بیخ شخصیت به کی میگفتن به مهاجرین میگفتن منافقین این رو میگفتن الله میفرماید عزت مال الله است مال رسول الله است مال مؤمنین است ما مال شما منافقین نیست شما عزتی ندارید شما ذلیل و خوارید ولله العزه ولرسوله فقط و فقط برای الله عزت عزت به معنای غالبهم می آید چون که انسان غالب میشه عزیز میشه ولی رسوله برای رسولش هست ولی المؤمنین برای مؤمنین است و المنافقین لا یعلمون اما منافقین نمیدانند اونها فکر میکنن عزت با پوله میگن خرج نکنید و خودشون را به خاطر پول عزیز میدونند پول ذات نمیاره عزت را الله میده اون چیزی که باعث عزت انسان میشه دین انسانه دیندار باش عزیزی چه داشته باشی چه داشته نباشی و اگر دیندار نباشی زلیلی چه پولدار باشی چه فقیر باشی پس مدار عزت و ذلت دین خداست و به خدا گرویدن هست نه چیزی دیگر یا ایوها الذین آمنوا لا طلحکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله در پایان سوره خدای عزوجل سرزنش میفرماید مسلمانان را و ترغیب میده به سوی انفاق که ای مسلمانان مخلص ای کسانی که ایمان شما ایمان واقعی است شما چرا حزینه نمی کنید که نیاز باشه به منافقین شما خود شما مخلصین حزینه کنید خود شما کسانی که ایمان به دارید حزینه کنید حزینه نمی کنید به خاطر اینکه مالتون کم نشه بخاطرین که اولادشون از گرسنگی نمیرند نخیر مال و اولاد یک وقت شما را از ذکر خدا از دین خدا مجموع دین غافل نکند یا ایوها الذین آمنوا ای مؤمنان لا تلحکم غافل نکند شما را اموال شما و نه اولاد شما عن ذکر الله از ذکر خدا از یاد خدا شما را غافل نکند از ذکر خدا باز میگن مجموع دین ومن يفعل هركس انكر بك یعنی غافل بشه فاولائك هم الخاسرون این گروه خاسران زیانکارن غفلت خساره میاره خساره در دنیا و آخرت میاره وانفقوا ما رزقناكم خرج کنید از اون چیزی که ما به شما رزق دادیم این پول پول شما نیست ما به شما دادیم خرج کنید من قبل ان یاتی احدکم الموت قبل از اینکه پیش یکی از شما مرگ بیاید مرگ به سراغیتون بیاید اون وقت فیقول میگوید رب لولا لا اخرتنی الى اجل قریب بار الهات چرا مرم مهلت ندادی تا یک مدت نزدیک ببین انسان وقتی که میمیرد در قرآن آمده برای دو چیز حسرت میخورد یکی برای عمل صالح یکی برای صدق کردن لو لا اخرتنی اعمل صالحا مهلت ندادی که من عمل صالح انجام بدم پس این مهلت را که شماها ماها داریم هم عمل صالح بکنیم و هم از این مهلت استفاده بکنیم در راه خدا صدقه بدیم که حسرت نخوریم هر روز صدقه بدیم هر هفته بدیم هر ماه بدیم یک بار نه الله می فرماید اون وقت این انسان میگوید رب أي رب من لولا اخرتني چرا مرا تأخير نكردي، دي مرا اقبنا يندغت مرق من را الى اجل قريب تا مدة نزيق فأصدق فاستا صدق بذهم وأكم من الصالحين وأصالحين باشم بس الصالحين باشم اللهم يفرمع ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء أجلها هرگز مؤخر نمی کند، به تأخیر نمی اندازد. الله هیچ نفسی را، یعنی مرگ هیچ نفسی را، اذا جاء عجلها، وقتی که عجلش می والله خبیرم بما تعملون، الله خبر داره به اون چیزی که شما عمل میکن.